خلعت سلطان اگرچه چه عزیز است جامعه خلقان خود به عزتتر و خانه بزرگان اگرچه لذیز است خورده انبان خود به لذتتر سرکه از دست رنج خویش بهتر از نان ده خدا و بره